گوهر مخزن اسرار همان است که بود حقه مهر بدان مهر و نشانه است که بود عاشقان زمره ارباب امانت باشند لا جرم چشم گهربار همان است که بود از سبا فوس که ما را همه شب تا دم صبح زلف تو همان مونس جان است که بود طالب لعل و گوهر نیست وگر نخورشی همچنان در عمل معدن و کان است که بو کشته قمزه خود را به زیارت در یاد زن که بیچاره همان دلنگران است که بود رنگ خون دل ما را که نهان می همچنان در لب لعلت تو عیان است که بود ظلف هندوی تو گفتم که دیگر ره نزند سالها رفت و بدان سیرت و سان است که بود حافظا باز نما قصه خونه آبه چشم که بر این چشمه همان آب روان است که بود حافظا باز نما قصه خون آبه چشم که بر این چشمه همان آب روان است که بود